توی این فایل صوتی من قصد دارم برای شما یک مقداری درباره همیت تنفس چه برای هیبنوتیزم کردن خودتون یعنی خود هیبنوتیز و چه در هیبنوتیزم کردن دیگران صحبت کنم ببینید ما بعدها اشاره خواهیم کرد که موضوع فیزیولوژی وضعیت بدن شما و همه اینها چطور توی هیبنوتیزم نقش دارن توی شکل دهی اون هیبنوتیکلوب توی اون چرخ هیپنوتیزمی که قرار شکل بگیره حالا با هر هدف خاصی بسیار مهم هست وضعیت بدن، فیزیولوژی، حتی نوع نشستن شما، زبان بدن شما تون صدای شما و کلی کل ویژه یک جانبی که ممکنه گفتار شما داشته باشه اما با تجربه این که الان یه مقدار باید پایه های مهم رو بهش اشاره داشته باشیم باید بدونید که چه در زمانی که میخواید خودتون رو هیبنوتیز کنید و چه در زمانهایی که میخواید دیگران رو کنید. موضوع تنفس رو نماید دست کم بگیرید ببینید من خیلی مطالعه داشتم در خصوصا تمدونهای یه مقدار قدیمی تر رامیز و اینها و حتی دیسپلین های کاملا مدرن که نکاتی رو میگن در روی درباره در روی و هر جا رو که می‌خونم برام خیلی جالبه این موضوع تنفس یه چیزیه که هرچند خیلی دست کم گرفتنش اما واقعاً تنفس بسیار مهمه در واقع اگه شما تنفس خودتون رو بتونید کنترل کنید یا ریتم تنفس فرد دیگر رو بتونید تحت تاثیر قرار بدید شما کل وجود اون آدم کل سطح هوشیاری اون آدم رو تحت تاثیر قرار دادید یعنی خیلی اوقات شما هوشیاریتون کم میشه مثلا عصبی میشید ناراحت میشید و علتش اینه که شما ریتم تنفستون از دست رفته و در واقع اثرگزارترین آدم ها کسایی هن که شما حینی حرف زدن اونها حتی تنفسشون رو میشنوید. تنفس اونها ممکنه ریتم آرومی داشته باشه. ممکنه زنهای شما صدای تنفس عمیق رو از اونها بشنوید. و تنفس صدای روح هر فرده. واقعا اینقدر اهمیت داره. اینقدر مهم و مؤثره. و دقیقا واسه همین به شما گفته میشه که چه زمانی که میخواد خودتون رو ایپنوتیز کنید چه زمانی که می‌خواید یه فرد دیگر رو ایپنوتیز کنید باید دقیقاً دقت دقیق کنید که اثر بذارید روی تنفس اون فرد یا روی تنفس خودتون دقت کنید که ما توی ادامه درس توی نکاتی که از علم NLP به فرض به شما خواهیم گفت در روی ماشین گن میررینگ و بیلدینگ رپورت و همه اینها به شما خواهم گفت که چطور اصلا بتونید تنفس یک فرد و ریتم تنفس خودتون یا دیگران رو تحت تاثیر قرار بدید نکات مختلفی رو خواهم گفت اما به اون یه پیش نیاز در طی روز سعی کنید این رو به اون یه پیش نیاز اولیه دقت کنید پیش که در طی روز به تنفس خودتون توجه بیشتری داشته باشید خوب نگاه کنید که چطور تو زمانهای مختلف که تو حس هس متفاوتی هستید تنفس شما هم به شکل متناظر با همون تغییر میکنه پس به تمرین شروع کنید از همین امروز دقت کنید به اینکه چطور نوع تنفس شما تو زمانهای مختلفی از روز که حس و حال مختلفی داری تغییر میکنه و جالبتر از اون دقت کنید چطور میتونید با کنترل ریتم تنفستون کل وجودتون رو تحت کنترل در بیارید این خیلی خبر جالب و امیغیه فکر نکنید به همی سادگی بهم گفت هم تو کنترل کن فهمیدم نه اینطور نیست خیلی موضوع عمیقه تنفس یکی از حساسی ترین چیزهاییه که شاید بشه که منشه کل وجود شما و منشه سطح اشیاری فعلی شماست منشه تونل واقعیتیه که در حال حاضر توش خردادید و خیلی میشه در روش حرف زد یعنی جالبه که وقتی که یک فرد به عنوان مثال توی حس و حال بدی قرار داره توی حالت غم یا شکستشکی عشقی رو تجربه کرده یه چیزی از اون انرژی منفی توی ریتم تنفسش خودش رو نشون میده این خیلی جالبه تقیای پزشکی مختلفی انجام شده روی این مسئله که همواره سطح اوشیاری شما توی تنفستون وجود داره و با تغییر ریتم تنفستون میتونید هم روی خودتون هم روی دیگران بیشتر اثر بذارید شروع کنید آروم نفس کشیدن رو شروع کنید امیختر نفس کشیدن رو اجازه بدید توی گفتارتون با دیگران صدای تنفستون و آرامش اون حس بشه شنیده بشه و اون موقع میبینید که تنفس خیلی مهمتر از اون چیزی بوده که فکرش رو میکرد و یکی از پیشنیاز های یک هیپنوتیزور خوب یک کسی که خوب میتونه دیگران یا خودش رو هیپنوتیزم بکنه خواهد بود